فارسی شیرین است جلد اول درس اول الفبای فارسی دیوار مسجد جامع نتنز الفبای فارسی همان الفبای عربی است به اضافه چهار حرف پ، چ، ج، گ این صداها در عربی کلاسیک وجود ندارند و به همین دلیل به الفبای فارسی اضافه شده هند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الفبای فارسی در اینترنت جستجو کنید The Persian فارسی الف به پ ت س جیم چه ه خ دال زال Re, ze, je, sin, shin, sad, zat, ta, za, ain, ain, fe, qaf, kaf, kaf, lam, mim, nun, waw, he, ye. Orthography. Vowels. A Aab Kebab Dara I Iran Div Ki U U Suut U Persian vowels with examples A Na من از ا نوه پدر اسفهان او نو مسلمان امید آ پا مادر آب ای آبی دین ایران او مو موم O. Persian alphabet with examples. Alif ba'i farsi ba' Alif. Anaar. Ensan. Otak. Aab. Madar. Dana. Dara. Be. Bahar. Kabuter. Asp. Aab. پروانه سپر چپ توپ ت، تر ستاره هست توت سه سبت مسلس لوز اساس جیم جوجه مسجد گنج تاج چه چتر، بچه گچ قارچ ه هوله سهرا مسیح لو خه خانه تخفیف میخ کاخ دال دانه مداد کمود درود زال زرت گذرنامه لذیذ شاز ره روباه کره شیر مار ز زال آویزان گز آواز ژ، جاله، ویژه لژ دژ سین سیر افسر مس عروس شین شهر کشتی کش موش ساد صدف فصل خالص قرس زاد ضرب، ازوله مریض حوز تا تبل توتی خط حیات زا ظرف، عظیم حافظ حفاظ عین. عینک، جعبه شم شجاع قین قار لغت تیق باق فه فکر کلافه لیف لاف قاف قند قلقلی قاشق اجاق کاف کاخ شکر نمک خاک گاف گوساله انگور سگ برگ لام لاله البرز گل خال میم مزرعه عمیق، نسیم خام نون نمک پنیر من کمان واو وسط شلوار موش دیو مو سرو جارو ه حاله مهر شبیه ماه یه یار آسایش شیر نی بینی گوی روسری در شهر چه خبره؟ آشنایی سلام اسم من مریمه سلام من علیم شغل تو چیه؟ من دکترم تو چی؟ من معلمم درس دوم خودتان را معرفی کنید کجای هستید؟ میدان نقش جهان و مسجد شاه در شهر اصفهان این میدان و مسجد به دستور شاه عباس کبیر حدوداً 400 سال پیش ساخته شدند برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شاهباز و پایتخت او اسفهان در اینترنت جستجو کنید واژگان سلام به پدرت سلام کن خداحافظ وقتی میرفت گفت خداحافظ اسم نام اسم شما چیست فامیلی نام خانوادگی ببخشید فامیلی شما چیست خانم آیا شما خانم پارسا را می شناسید؟ آقا استاد فارسی ما آقای عارف است دختر من سه دختر و یک پسر دارم پسر پسر کوچک شما چند ساله است؟ چیست؟ اسم دختر بزرگ شما چیست؟ خوشبختم از دیدن شما بسیار خوشبختم کجایی هستید؟ ببخشید شما کجایی هستید؟ طور. خواهر من معلم است و من هم همینطور. چطور؟ شما چطور به دانشگاه میآیید؟ کجا؟ دیشب کجا رفتید؟ وقت؟ من وقت ندارم با شما به سینما بروم. هم خواهرم هم در ایران زندگی می کند؟ لهجه وقتی فارسی حرف میزنید کمی لهجه انگلیسی دارید. شیراز؟ شیراز یکی از شهرهای بزرگ ایران است اصفهان اسفهان یکی از شهرهای تاریخی ایران است پدر پدر شما ایرانی است؟ مادر مادر من خیلی مهربان است خواهر شما چند خواهر دارید؟ برادر برادر شما کجا زندگی می کند؟ بچه او هنوز بچه است زن آیا بازن و بچه آمدی؟ شوهر؟ شوهرم مهندس کامپیوتر است. دایی؟ دایی من سه پسر دارد. خاله؟ یکی از خاله هایم در شیراز زندگی می کند. امو عموی من پارسال فوت کرد. عمه؟ من عمم را خیلی دوست دارم. دختر دایی چند دختر دایی داری؟ دختر خاله؟ دختر خاله من در امارات درس میخواند. خاند دختر امو دختر اموی شما کجا کار می کند؟ دختر امه دختر امه من تار می زند پسر دایی پسر دایی من در ایران است پسر خاله پسر خاله من نقاشی می کند پسر امو مریم با پسر امویش ازدواج کرد پسر امه امروز تولد پسر است. مادر بزرگ. مادر بزرگم با ما زندگی می کند. پدر بزرگ. پدر بزرگ من مرد بزرگی بود. نوه. نوه شما چند سال دارد؟ من. من ایرانی هستم. تو. تو کجایی هستی؟ او. او برادر من است. ما. ما ایرانی هستیم. شما. شما کجایی هستید؟ آنها آنها انگلیسی هستند سیاه موی من سیاه است. استاد استاد ما خوب درس می دهد اینک من برای خواندن به عینک نیاز دارم دانشگاه او در دانشگاه زبان فارسی می خاند. خانه خانه شما کجاست؟ مدرسه، مدارس برادر کوچک من به مدرسه می رود. زیبا. چشم های شما بسیار زیبا است. قدیمی. ماشین من خیلی قدیمی است. جدید. پالتوی من جدید است. خوشحال. از دیدن شما بسیار خوشحالم. گفته گو. لحجه. سلام خانم، اسم من نیماست، اسم شما چیست؟ سلام اسم من سیماست خوشوقتم منم هم همینطور شما کجایی هستید؟ من اهل شیرازم شما چطور؟ من تهرانی هستم ولی پدر و مادرم اصفهانی هستند ولی شما لحجه اصفهانی ندارید؟ شما هم همینطور لحجه اصفهانی نه لحجه شیرازی در شهر چه خبره؟ معرفی علی این مریمه مریم همکار منه سلام مریم خانوم سلام شما چی درس میدین؟ زبان فرانسه درس میدم شما چند تا زبان بلدید؟ من سه تا زبان بلدم فارسی و انگلیسی و فرانسه چه خوب از آشناییتون خوشحال شدم منم همینطور خدافز درس سوم، ایران بزرگتر است یا کانادا؟ چند پرچم در قبرستان شهداد در شهر کاشمر؟ این شهدا کسانی هستند که در جنگ ایران و عراق کشته شدند برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جنگ ایران و عراق یا جنگ تحمیلی در اینترنت جستجو کنید واژگان صبح خیر وقتی از خواب بیدار می شوی به همه بگو صبح بخیر. خیر وقتی وارد کلاس شد گفت عصب بخیر. شب بخیر. قبل از خوابیدن بگو شب بخیر. صبح امروز صبح کلاس فارسی دارم زهر زهر برای نهار کجا می روی؟ بعد از ظهر. بعضی ها بعد از زهر می خوابند عصر دیروز تا عصر دانشگاه بودم غروب غروب خیلی زیباست شب بچه ها از شب و تاریکی می ترسند اینجا آیا شما اینجا زندگی می آنجا آیا آنجا خیلی دور است؟ آن آن کتاب مال من است این من این کتاب را نخوندم بسیار هوا بسیار سرد است خیلی هوا خیلی گرم است بد غذای آن رستوران خیلی بد بود بدتر هوای اینجا بدتر از آنجاست. بدترین بدترین روز زندگیم روزی بود که پدرم فوت کرد خوب شما خیلی خوب رانندگی می کنید بهتر هوای اینجا بهتر از آنجاست بهترین تو بهترین دوست من هستی دانشجو دانشجویان او دانشجوی دانشگاه مگیل است مهندسی برادر من مهندسی و عمران می خاند. ممنون از شما بسیار ممنون هستم خوشا به حالتان وقتی به آنها گفتیم که در دانشگاه قبول شدیم آنها گفتند خوشا به حالتان معذرت خواستن از او از من معذرت خواست خواندن. او علوم سیاسی می خاند گو. استاد جدید صبح خیر من بابک هستم اینجا مهندسی میخوانم. شما چه میخوانید؟ صبح شما هم بخیر. من پروین پارسا هستم و اینجا دانشجو نیستم خوشا به حالتان. اینجا دانشگاه بسیار بدی است و بدترین اساتید را دارد. خیلی ممنون. من استاد جدید این دانشگاه هستم. خیلی معذرت میخواهم ولی اینجا بهترین استادهای جدید را دارد. خواندن، کانادا و ایران من ایرانی هستم ولی در کانادا زندگی می کنم. ایران کشوری قدیمی است ولی کانادا کشور جدیدی است. پدر و مادر من در ایران هستند ولی خواهر و برادر من در کانادا زندگی می کنند. من در دانشگاه مکگیل مهندسی می خوانم. دانشگاه مکگیل یکی از قدیمی ترین دانشگاه های کانادا است. در شهر چه قبله؟ آدرس پرسیدند. ببخشید آقا، میدونه ونه کجاست؟ مستقیم برید، بعد بپیچین سمت چپ میدونه ونه از اینجا خیلی دوره؟ نه خیلی، با ماشین یه ده دقیقه طول میکشه مرسی خواهش میکنم درس چهارم. ایران چند دستان دارد؟ آرامگاه و مجسمه ی شاعر بزرگ ایران فردوسی فردوسی یک هزار سال پیش زندگی میکرد و نویسنده حماسه ملی ایران یعنی شاهنامه است آرامگاه فردوسی در شهر تاریخی توس در نزدیکی مشهد مرکز استان خراسان رضوی واقع است برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فردوسی و مشهد در اینترنت جستجو کنید واجگان حال احوال حال شما چطور است؟ مرسی وقتی در را برایم باز کرد گفتم مرسی متشکرم وقتی سخنرانیم تمام شد گفتم متشکرم فیلم آخرین فیلمی که دیدی چه بود؟ یعنی زیبا یعنی قشنگ معنی معنی این کلمه چیست؟ زبان شما چند زبان بلدید؟ مردم مردم این کشور بسیار مهربان هستند استان شیراز در کدام استان قرار دارد؟ کشور کشور شما در کدام قاره است؟ روستا زندگی در روستا بسیار ساده تر است زیبا خانوم شما خیلی زیبا هستند قشنگ خانه قشنگی دارید؟ زشت هیچ کس در این دنیا زشت نیست شمال شهر رشت در شمال ایران است جنوب من در جنوب شهر زندگی می کنم شرق زاهدان در شرق ایران است غرب. ترکیه در غرب ایران است مرکز مرکز شهر همیشه شلوغ است رنگ رنگ چشمان شما خیلی زیباست. سبز لطفاً آن شلوار سبز را برایم بیاورید آبی رنگ آبی را دوست دارم قرمز قرمز رنگ مورد علاقه من است زرد قناری زرد است سفید موهای مادرم خیلی سفید شده است دریا دریا طوفانی است دریاچه آب دریاچه شور است اقیانوس اقیانوس بسیار بزرگ است شور خیلی نمک ریختی غذا شور است شیرین این آب میوه بسیار شیرین است تلخ این دوا خیلی تلخ است تند. قضاهای هندی معمولا تند هستند بخشیدن او از من معذرت خواست و من او را بخشیدم شناختن آیا همسرم را می شناسید دیدن من دیروز این فیلم را دیدم گفتگو استان گیلان سلام سیمین سلام حالت خوب است؟ بله تو چطوری؟ منم خوبم مرسی این چیست؟ یک فیلم ایرانی به نام گیلان. گیلان یعنی چه؟ گیلان نام یکی از استانهای ایران است. فیلم خوبی است؟ بله، فیلم بسیار خوبی است. آیا گیلان استان زیبایی است؟ بله، گیلان یکی از زیباترین استانهای ایران است. خواندن گیلان. گیلان استانی است در شمال ایران. استان گیلان بسیار سبز است. این استان شهرهای بسیاری دارد. شهرهای استان گیلان خیلی زیبا هستند. مرکز این استان رشت است. زبان محلی مردم گیلان گیلکی است. دریای خزر هم در شمال ایران است. آب این دریا شور است. در شهر چه خبره؟ در بانک. ببخشید، باجه خدمات ارزی کجاست؟ همینجاست جناب. میخواستم این هزار دلار رو تبدیل کنم. نرخ دلار امروز چنده؟ یه لحظه اجازبتی نگاه کنم. دستتون درد نکنه. نرخش 920 تومنه. پس هزار دلار میشه 920 هزار تومن. بسیار خوب. متشکرم. هزار دلار خدمت شما. درس پنجم. در مورد نروز چه میدانید؟ درختان پر از شکوفه در یکی از روستاهای خراسان، در فاصله چند کیلومتری نیشابور. این عکس یک هفته پس از سیزده به در گرفته شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیزده به در در اینترنت جستجو کنید. واژگان در مورد. در مورد تاریخ ایران چه می دانید؟ پیش از یا قبل از؟ پیش از انقلاب در ایران زندگی می کردم. پس از یا بعد از؟ بعد از کلاس به سینما می رویم تا تا تابستان در این شهر هستیم از روی هواپیما از روی دریاچه گذشت علاوه بر این من یک پدرم علاوه بر این یک معلم هم هستم نو در نوروز همه مردم لباس نو می پوشند اولین اولین روز بهار نوروز است آخرین آخرین روز هفته در ایران جمعه است جالب یک خبر جالب برایت دارم. نوروز؟ نوروز اولین روز فروردین ماه است. فروردین؟ فروردین اولین ماه سال ایرانی است. سفره هفت سین. هر سال سفره هفت سین را من می چینم چهارشنبه سوری؟ ایرانیان در چهارشنبه سوری از روی آتش می پرند سفره؟ سفره را بچین. جشن چند جشن ایرانی را نام ببرید. آتش. آتش برای بچه ها خطرناک است. بازی. من بازی شطرنج را دوست دارم. آتش بازی. در چهارشنبه سوری آتش بازی می کنند سکه. برای عیدی یک سکه طلا گرفتم. سماق. چلو کباب را باید با سماق خورد. سرکه. روی سالاد سرکه و روغن زیتون ریختم. لباس لباس گرم بپوش چون هوا سرد است مهمانی من در یک مهمانی با او آشنا شدم همسر کی از همسرتان جدا شدید چیز چند چیز را نام ببرید که با حرف الف شروع شوند حقوق حقوق ماهیانه شما چقدر است هنر من به هنر مندم نقاشی من از بچگی نقاشی می کردم. طبیعت. طبیعت ایران بسیار متنوع است. خارج. آنها خارج از شهر زندگی می کنند. داخل. داخل کیفم را گشتم ولی کلیدم را پیدا نکردم. عدد. آیا درست است که سیزده عدد بدیوم نیست؟ حرف. درخت با حرف دال شروع می شود. واژه یا کلمه یا لغت این درس واژگان بسیار سختی دارد عبارت عبارات صبح بخیر یک عبارت است جمله جملات با هر یک از لغات درس یک جمله بسازید پاراگراف در یک پاراگراف شرح حالتان را بنویسید مقاله مقالات یک مقاله در مورد سنتها و رسوم مردم کشورتان بنویسید. ساعت ساعت ساعت پنج است. دقیقه دقایق چند دقیقه طول میکشد؟ ثانیه هر دقیقه شست ثانیه است. روب قرار بود ساعت هفت و روب همدیگر را ببینیم. چه شما درباره ایران چه میدانید؟ چه کسی چه کسی امروز به خانه شما می آید؟ کی؟ کی کلاستان تمام می شود؟ کدام کدام مداد مال شماست؟ چرا؟ چرا دیشب نیامدی؟ چند چند برادر داری؟ چقدر؟ چقدر پول با خودت آوردی؟ شروع شدن؟ کلاس ما ساعت ده و سی دقیقه شروع می شود؟ شروع کردن؟ من خاندن فارسی را پارسال شروع کردم گفتگو نوروز چه می یک کتاب در مورد نوروز نوروز چیست؟ نوروز سال نو ایرانی است اولین ماه سال ایرانی چیست؟ فروردین مردم ایران سال نو را چطور جشن می گیرند؟ آنها سفره هفت سین می لباس نو می و به مهمانی می روند. سفره هفت سین چیست؟ سفره هفت سین هفت چیز است که با حرف سین شروع می شود مثل سکه، سوماغ و سرکه. چه جالب؟ خواندن سال نو ایرانیان پیش از سال نو سفره هفت سین میچینند و آن را تا روز سیزده به در نگه می دارند سیزده به در سیزدهین روز سال نو است که ایرانیان در آن روز به خارج از خانه، و یا به طبیعت می روند. علاوه بر این، ایرانیان آخرین سهشنبه هر سال را با آتش بازی و پریدن از روی آتش جشن می گیرند. نام این روز چهارشنبه سوری است. جشنهای ایرانیان بسیار قدیمی و متنوع هستند. اعداد. یک. اول. اولین. دو. دوم. دومین. 3 سوم سومین. چهار چهارم، چهار پنج 5 پنجم، پنجمین. شش ششم، ششمین، ه. هفت هفتم هفت هشت هشتم، هشت نه. نهم، نهمین ده. دهم، دهمین. 11 یازده یازدهم یازدهمین دوازده دوازدهم دوازدهمین سیزده سیزدهم سیزدهمین چهارده چهاردهم چهارده چهاردهمین پانزده پانزدهم پانزدهمین شانزده شانزدهم شانزدهمین هده هفدهم هفدهمین هجده هجدهم هجدهمین هم هجده نوزده نوزده هم نوزده همین بیست بیست 20 بیست همین بیست یک بیست 21 سی و یک سی و یک سی چهل پنجا پ، 5 و, و یک پ و کم، پ کمین 6 6م، 6 میین و شست شست هم، شست شست و کم، 6 کمین اد تا دوم، 90 دومین، ساد، سادوم، و سادو صد. صدوم. صد بیست و پنج، سادو و بیست و پنجمین، دهیست، دهیستوم، دهیستومین، سی ساد، صد. سی سادوم، سی سادومین، چهار ساد، صد. چهار سادوم، چهار پان صد. پان صدوم. پان شش, صد. شش 600 میین 700 هفتصدم هفتصد میین هصد هشت صدم هشتصد و میینصد نهصدم نهصد میین صد و نه و نه نهصد و نه و نهم نهصد و نه و هزارم هزارم دو هزارمین، نو و مین. یک میلیون یک میلیونم. یک میلیون اومین. یک میلیارد یک میلیاردم. یک میلیاردومین در شهر چه خبره؟ در سینما دوتا بیلیت برای فیلم باران چه سانسی؟ ساعت هفت خوبه؟ نه اگر دیرتر باشه بهتره واسه سانس نه و نیم ندارین؟ چرا؟ داریم ده هزار تومن بفرمایین اینم ده بهتر قبل از نهروب تو سالون باشین درارو نه و ویس دقیقه می درس ششم آخر هفته در ایران چه روزی است؟ پنجشنبه بعد از ظهر و جمعه در ایران خیلیها ها کار نمی کنند یکی از تفریحات مورد علاقه ایرانیان رفتن به باغها و پارکهای عمومی است این عکس در باغ فین در شهر تاریخی کاشان گرفته شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کاشان و باغ در اینترنت جستجو کنید. واژگان دیروز دیروز او را در کتابخانه دیدم. امروز امروز هوا خیلی خوب است. فردا من فردا کلاس ندارم. هر روز ما هر روز به پارک می رویم چند شنبه چند شنبه او را دیدی شنبه شنبه اولین روز هفته است یک شنبه یک شنبه در ایران تعطیل نیست دو شنبه دو شنبه خیلی کار دارم سه شنبه سه شنبه باید به مدرسه پسرم بروم چهار شنبه چهار شنبه باید این کتاب را تمام کنم پنج شنبه عصر پنج شنبه به دیدن او رفتم جمعه جمعه چه کار می کنید؟ روز سومین روز هفته دوشنبه است هفته هر هفته هفت روز دارد ماه ماه آینده به سفر می رویم سال امسال سال خوبی بود قرن قرون هر صد سال یک قرن است دهه در دهه اخیر کشور ما مشکلات زیادی داشته است آینده در آینده میخواهی چه بشوی؟ بشوی؟ حال بهتر است در زمان حال زندگی کنی، نه در آینده و نه در گذشته. گذشته از گذشته چیزی یادم نیست. چون با آنها به سینما نرفتم چون خیلی درس داشتم. زیرا همه شما را دوست دارند زیرا شما مرد خوبی هستید. هیچ امروز هیچ نمی روم. چون میخواهم درس بخوانم. مهمان فردا چند مهمان دارم. نامه امروز یک نامه دریافت کردم. پاکت نامه را در داخل پاکت گذاشتم. تمبر آیا روی پاکت تم چسباندی؟ پستخانه ببخشید پستخانه کجاست؟ تعداد تعداد دانشجویان کلاس چند نفر است؟ فرد هفت عددی فرد است زوج هشت عددی زوج است گروه معلممان ما را به سه گروه تقسیم کرد معمولا معمولا صبح زود بیدار میشوم. آخر هفته آخر هفته او را می بینم استثناء. در زبان فارسی استثنا زیاد وجود ندارد کار کردن مردم ایران جمعه ها کار نمی کنند. زندگی کردن آنها هنوز با مادرشان زندگی می کنند خواستن من می خواهم شما را ببینم خوردن شام چه می خوری؟ نوشتن مشخایت را نوشتی؟ گفتن به من گفت که دیر برمی گردد پوشیدن چه لباس قشنگی پوشیده ای؟ خابیدن. ساعت چند می خوابی؟ شنیدن آیا خبر جدید را شنیده ای؟ سر کار رفتن من هر روز صبح ساعت هشت سر کار میروم. مسافرت رفتن. ما در تابستان معمولا به مسافرت می رویم. تقسیم کردن. این پول را بین خودت و خواهرت تقسیم کن. گفتگو. جمعه. دیروز کجا رفتی؟ دیروز چند شنبه بود؟ دیروز جمعه بود. دیروز هیچ نرفتم چون روزهای جمعه هم کار میکنم. تو چطور؟ روزهای جمعه معمولا به رشد می خواهرم خواهرم آنجا زندگی می کند آیا جمعه آینده هم به رشد می روی؟ نه جمعه آینده استثنان به رشد نمیروم چون مهمان دارم خوندن روزهای هفته هر هفته هفت روز دارد در ایران اولین روز هفته شنبه است و آخرین روز هفته جمعه است مردم ایران روزهای جمعه سرکار نمی روند اکثر آنها یا به گردش می روند یا به مهمانی شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه روزهای هفته هستند چون روزهای هفته با یک عدد آغاز می شوند آنها را به دو گروه روزهای فرد یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه و روزهای زوج شنبه و دوشنبه و چهار شنبه تقسیم می‌کنیم. در شهر چه خبره؟ در بقالی. سلام حاج از اون روغن زیتونی که هفته پیش بردم دارین؟ سلام خانم مهندس. اتفاقا تموم شده ولی یکی از اون بهتر برام از ترکیه رسیده. قیمتش هم مناسبه. چند مگه؟ قابل شماره نداره خانم مهندس چهارهزار هزار و قربون دستتون دوتا بدین درس هفتم. ورزش مورد علاقه شما چیست؟ یک مغازه لوازم ورزشی در تهران دوتا از ورزش هایی که از همه بیشتر مورد علاقه ایرانیان میباشند فوتبال و کشتی هستند برای اطلاعات بیشتر در مورد تیم ملی فوتبال ایران در اینترنت جستجو کنید. واژگان. پریروز. پریروز او را در خیابان دیدم. پس فردا. پس فردا به دیدن مادرم میروم. قبلا. قبلا این فیلم را دیدم. شاید. شاید او هم با ما بیاید. باید. باید خوب درس بخوانی. نباید. نباید دروغ بگویی. لطفاً. لطفاً این اسکناس را خرد کنید. با هم؟ می توانیم با هم به دیدن او برویم. به غیر از یا بجز به غیر از مریم همه امتحان دادند. هنگام هنگام بهار طبیعت بسیار زیبا می شود. آجیل ببخشید، آجیل کیلویی چند است ؟ فکر افکار حتی از فکرش هم میترسم ترسم. ایده؟ از ایده او خوشم آمد ماشین ماشین جدیدتا مبارک رانندگی من رانندگی بلد نیستم کمربند ایمنی هنگام رانندگی باید کمربند ایمنی خود را ببندید جک او خیلی جک های بامزه بلد است جوان وقتی جوان بودم میخواستم تا ابد زنده بمانم سوال سوالات او به سوال من پاسخ خوبی داد ورزش ورزش برای سلامتی لازم است کشتیگیر تختی یک کشتیگیر بسیار محبوب بود قهرمان برای بچه ها پدرانشان همیشه قهرمان هستند پهلوان پهلوان ها بسیار جوانمردند برنامه امروز برنامه چیست؟ مسابقه من قصد دارم در مسابقه دو شرکت کنم تیم تیم شما از تیم ما قوی تر است فوتبال تقریبا همه ایرانیان فوتبال را دوست دارند طرفدار من طرفدار تیم پرسپولیس هستم جهان دانشگاه ما یکی از بهترین دانشگاه های جهان است اروپا فرانسه در اروپا است آسیا ایران در قاره آسیا قرار دارد. آفریقا کشور مصر در آفریقا است. آمریکا آمریکا یکی از کشورهای وسیع جهان است. قاره ایران و مصر در دو قاره مختلف هستند. کوچه خانه ما در کوچه بهار است. خیابان وقتی از خیابان می‌گذری مواظب باش. فصل تولد من در فصل بهار است. ملی کتابخانه ملی کجاست؟ دور. خانه ما از اینجا زیاد دور نیست. نزدیک. آیا بانک ملی نزدیک دانشگاه است؟ ممکن. ببخشید. ممکن است لطفا سیگار نکشید؟ لازم. لازم نیست این کتاب را بخرید. سنتی. بسیاری از مردم ایران سنتی هستند. معروف کمال الملک یکی از نقاش های بسیار معروف ایران است مشغول هرچه تلفن کردم شمارت مشغول بود چند چند نفر را دعوت کردم امکان داشتن آیا امکان دارد من هم با شما بیایم؟ احتمال داشتن چقدر احتمال دارد برف ببارد؟ توانستن ببخشید می توانم اسمتان را بپرسم گذاشتن پاهایت را روی میز نگذار دانستن اسم تو را نمیدانم. دانم بستن. بند کفشت را ببند وگرنه زمین میخوری؟ اجازه دادن اجازه می دهید از خودکارتان استفاده کنم پاسخ دادن وقتی از او سوال کردم پاسخی نداد پر کردن لطفا این فرم ها را پر کنید درست کردن امشب من شام درست می کنم شرکت کردن آیا دیروز در کلاس شرکت کردید؟ علاقه داشتن به من به نقاشی خیلی علاقه دارم موافقت کردن او موافقت کرد که با من بیاید گفتگو فوتبال سلام بچه ها برنامه امروز من چیست؟ امروز به خانه سینا می رویم تا با هم بازی فوتبال ایران و آمریکا را ببینیم چه خوب من هم آجیل می آورم شما ساعت چند می روید؟ ساعت پنج اگر می خواهی می توانیم با هم برویم فکر بسیار خوبی است چون من ماشین ندارم و خانه سینا خیلی دور است خواندن، ورزش یکی از ورزش های سنتی ایران کشتی است کشتیگیران ایرانی در مسابقات جهانی شرکت می کنند. در ایران به قهرمانان کشتی پهلوان می‌گویند. معروفترین پهلوان کشتی در ایران جهان پهلوان تختی بود به جز کشتی مردم ایران به فوتبال نیز علاقه دارند در کوچه شهرهای ایران اغلب تعدادی جوان مشغول بازی فوتبال هستند اکثر ایرانیان طرفدار تیم ملی ایران هستند در شهر چه خبره؟ گردش در شهر لطفا همه جمشین پنج دقیقه دیگه را می افتیم برنامه امروزمون چیه؟ اول میریم موزه ایران باستان بعدش میریم موزه آبکینه نهارم میریم هتل فردوسی بعد از ظهر چی؟ موزه فرش رو کی بریم؟ فکر نکنم امروز برسیم امیدوارم فردا بتونیم بریم درس هشتم آیا شما چانه میزنید؟ بازار وکیل در شیراز با اینکه شیراز مغازه و فروشگاه های زیادی دارد خیلی از شیرازی ها مثل خیلی ها در ایران از خرید کردن در بازار لذت میبرند چون دوست دارند چانه بزنند برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شیراز و بازار وکیل در اینترنت جستجو کنید واژگان سبحان امروز برای صبحانه چه می خورید؟ نهار, نهار چه خوردی؟ اسرانه من هر روز برای اسرانه نان و پنیر می خورم شام من شبها شام نمی خورم نیمرو نیمرو می خواهی یا املت؟ تخم مرغ. چند تخم مرغ بخرم؟ گردو برای فسنجان باید مقداری گردو بخرم بادام در شله زرد بادام هم می‌ریزم. تخمه. تخمه شکستن در سالن سینما ممنوع است. ماجون. در ماجون شیر و زرده تخم مرغ و گردو و بادام و نارگیل و شکر و چیزهای دیگر می‌ریزند. خرما. خورما میوه درخت نخل است. کوه. دماوند بزرگترین کوه ایران است. کوهنوردی مردم ایران کوهنوردی را دوست دارند مبلغ او مبلغ زیادی برای چاپ کتابش پرداخته است قیمت قیمت ماشینش خیلی بالا بود برچسب قیمت ببخشید ولی این بلوز برچسب قیمت ندارد نصف نصف کلاس قایب هستند نو انواف از این نو لباس خوشم نمی آید خریدار خیلی زود نمایشگاه کتاب از خریداران کتاب پر شد فروشنده ببخشید فروشنده کجاست؟ مغازه. او در یک مغازه کار می کند اجناس اجناس این سوپرمارکت بسیار گران هستند میدان ببخشید تا میدان ونک چقدر می شود؟ تفری تفریات تفریح من سینما رفتن است. آداب آداب غذا خوردن در کشورهای مختلف متفاوت است. استدلال وکیل باید قدرت استدلال خوبی داشته باشد. قدرت قدرت این دستگاه چقدر است؟ تازه نان تازه بوی خیلی خوبی میدهد. مانده این نان را نخور چون مانده است. مشکل ساز بازی از بچه ها از کودکی مشکل سازند ساده او آدم ساده ای است آسان فارسی زبان آسانی است بعضی بعضی از دانشجویان زبان عربی هم می خوانند مختلف من و همسرم عقاید مختلفی داریم متفاوت سلیغه های ما کاملا متفاوت هستند متداول ازدواج فامیلی در خانواده های سنتی ایران متداول است یکسان پدرم اموالش را به طور یکسان میان بچه هایش تقسیم کرد روی روی میز ننشین زیر زیر میز پنهان شد بیرون او از پنجره به بیرون نگاه کرد بین خانه او بین بانک و پارک است البته البته که با شما میآییم پارسال پارسال از اینجا رفت پیرارسال من پیرارسال با او آشنا شدم تابهال آیا تابهال به ایران رفته ای؟ بعضی وقتها بعضی وقتها دلم برای ایران تنگ می شود همیشه همیشه دوستت خواهم داشت اغلب اغلب او به من تلفن می زند به ندرت به ندرت او را می بینم هیچ وقت هیچ وقت فراموشت نمی کنم یاد آمدن یادت می آید چند سال پیش او را دیدی؟ فراموش کردن ببخشید من نام خانوادگی شما را فراموش کردم امتحان کردن باید غذای این رستوران را امتحان کنید چون خیلی خوب است امتحان دادن فردا باید امتحان بدهیم امتحان گرفتن استادمان هر هفته امتحان می گیرد زنگ زدن حتما به من زنگ بزن خوش به دیشب در منزل شما به ما خیلی خوش گذشت بد به امیدوارم به شما بد نگذشته باشد چانه زدن لطفاً چانه نزنید قیمت این تابلو مقطوع است تخفیف گرفتن او توانست هزار تومن تخفیف بگیرد وجود داشتن چهار فصل مختلف در ایران وجود دارد خالی کردن لطفاً چمدانهایتان را خالی کنید میدان را خالی نکردن شما نباید میدان را خالی کنید گفتگو کوه دیرو ساعت هفت صبح زنگ زدم نبودی کجا رفته بودی؟ با بچه ها کوه نبردی رفته بودیم. خوش گذشت. خیلی صبحانه نیمرو خوردیم سهراب هم خورما آورده بود و من گردوی تازه چه مجرونی؟ من تا به حال نیمرو با خورما و گردو نخوردم باید امتحان کنی شایدم خورده باشم ولی یادم نمیآید. هفته دیگر با ما بیا به تو بد نخواهد گذشت. این هفته میخواستم با شما بیایم بلی به من نگفته بودید که به کوه می روید حق با توست من از تو معذرت می خواهم خاندن. چانه زدن آداب خرید و فروش در کشورهای مختلف متفاوت است در ایران چانه زدن بسیار متداول است چانه زدن یعنی خریدار سعی می کند از فروشنده تخفیف بگیرد بعضی وقتها خریدار می تواند تا بیش از نصف مبلغ را تخفیف بگیرد در مغازه های کوچک معمولاً برچسب قیمت روی اجناس وجود ندارد و این مشکل ساز است. البته برای بعضی ها تخفیف گرفتن یک نوع تفریح است. شما باید برای تخفیف گرفتن قدرت استدلال خوبی داشته باشید و به این آسانی میدان را خالی نکنید. در شهر چه خبره؟ در تابستان سینا جون امسا تابستان کجا میرین؟ دوباره میرین شما؟ نه، بابا میخواد ما رو ببره فرانسه که زبان تمرین کنیم. خوش به حالتون. کاش منم میتونستم همراهتون بیام. ما امسال تابستون هیچ را نمیریم. ان سال دیگه. درس نهم. شما به چه اعتقاد دارید؟ کلیسای وانگ در جلفای اصفهان. کلیسای وانگ یکی از زیباترین کلیساهای ارمنی در ایران است. ارامنه بسیاری در محله جلفا زندگی می کنند برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جلفای اصفهان و ارامنه ایران در اینترنت جستجو کنید واجگان واحد این ترم چند واحد برداشتی؟ ترم این ترم درسهایم خیلی سنگین است آخر هفته آخر این ماه به ایران می روم. اول به خط اول دقت کن فقط. من فقط تو را دوست دارم نفر امروز دو نفر به شما تلفن زدند قانون قوانین طبق قانون باید با کمربند ایمنی رانندگی کنید حتی من به هیچ کس اعتماد ندارم حتی تو عملا عملا تمام کارها را من انجام می دهم تمام تمام شب بیدار بودم آدم او آدم خوبی است درباره درباره ادبیات فارسی چه میدانید؟ راجبه یک گفتگو بنویسید راجب تاریخ ایران. در مورد او در مورد من سوالاتی کرد. عقیده عقاید عقیده شما در مورد سخنان رئیس جمهور چیست؟ نظر من نظری ندارم. توانایی شما توانایی انجام این کار را دارید. حداکثر حد اکثر سه روز میمانیم. حداقل او باید حداقل پنجاه سالش باشد. مسئله مسائل مسئله به این مهمی را چرا به من نگفتی؟ مشکل مشکلات بزرگترین مشکل شما در زندگی چیست؟ پیامبر پیغمبر پیامبر اسلام حضرت محمد است. شوشی. شورشیان همه جا را به آتش کشیدند. سپاهی. سپاهیان امنیت را در شهر برقرار کردند. حجاب. در ایران خانمها باید هجاب اسلامی را رعایت کنند. رعایت. رعایت قانون الزامی است. مسلمان. بیشتر مردم ایران مسلمان هستند. اقلیت مذهبی. به جز مسلمانان چند اقلیت مذهبی نیز در ایران وجود دارند مسیحیان مسیحیان به حضرت عیسی اعتقاد دارند زرتشتیان بیشتر زرتشتیان در ایران و هندوستان زندگی می ارامنه کلیساهای ارامنه در اصفهان بسیار زیبا هستند یهودیان کلیمیان اکثر یهودیان مهاجرت کردهاند بهاییان هایان زیادی در هندوستان زندگی می کنند وجود؟ اکثر ادیان وجود خدا را تایید می کنند. دلیل به دلیل مشکلات مالی باید مهاجرت کنیم دولت ملت این کشور دولت را انتخاب کردند. قانون مدنی. طبق قانون مدنی این کشور خانومها حق رانندگی ندارند همه؟ همه آمدند به جز تو چه چه چه پیر، چه جوان همه به خیابان رفتند برای برای قبول شدن در انتحانات باید خیلی درس بخوانی. بعضی یا برخی بعضی از دانشجویان تکالیف خود را هنوز به استاد نداده هند. جهانگرد هر سال جهانگردان خارجی بیشماری برای دیدن آثار باستانی به ایران میروند زیبایی زیبایی او بینذیر است. کوهن ادبیات کوهن فارسی بسیار غنی است. تمدن ایرانیان به تمدن کهن سرزمین خود افتخار می کنند. ایران زمین ایران زمین در گذشته بسیار بزرگتر از ایران فعلی بود گرفتن. من باید بروم نان بگیرم برداشتن من پسرم را ساعت نیم از مدرسه بر ثبت نام کردن آیا برای ترم آینده ثبت نام کرده ای؟ دعوت کردن چند نفر را برای تولدت دعوت می کنی؟ پیروی کردند. مسلمانان از تعالیم اسلام پیروی می کنند جذب کردن این دانشگاه بهترین دانشجویان را جذب می کند مربوط بودن این مسئله به شما مربوط نیست گفت و گو واحد های دانشگاهی این ترم چند واحد برداشتی؟ چون سال آخرم می توانستم شش واحد بردارم ولی فکر کردم بهتر از چهار واحد این بگیرم و دو واحدم در تابستان آیا دانشجویان زیادی ترم آخرشان است؟ نه ما فقط پنج نفر هستیم که ترم آخریم قوانین دانشگاه ما اجازه نمیدهد که بیشتر از چهار واحد برداریم حتی اگر ترم آخر باشیم این قانون خوبی است چون عملا گرفتن چهار واحد تمام وقت آدم را میگیرد. گیرد دین بیشتر مردم ایران مسلمان هستند البته اقلیت های مذهبی هم در ایران وجود دارند مثل اقلیت های مسیحی، زرتشتی، بهایی و یهودی به دلیل وجود دولت اسلامی قوانین مدنی کشور قوانین اسلامی هستند و همه مردم چه مسلمان و چه غیر مسلمان باید از این قوانین پیروی کنند یکی از این قوانین که به زنان مربوط می شود رعایت هجاب اسلامی است. حتی جهانگردان خارجی زن نیز باید از این قانون پیروی کنند بعضی از این جهانگردان این قانون را دوست ندارند ولی زیبایی ها و تمدن کوهن ایران زمین آنها را به ایران می میکنند در شهر چه خبره؟ در رستوران سلام علیکم بفرمایین سلام یه میز برای دو نفر لطفا چشم؟ بفرمایین از این طرف یه میز کنار پنجره نداشتین؟ نه متاسفانه قضای روزتون چیه؟ خورش فسنجون داریم و تحچین به به. پس یه فسنجون و یه تحچین نات کنیم رو چشم؟ در دهم. آیا زن و مرد برابرند؟ دو زن جوان با حجاب اسلامی در میدان نقشه جهان اصفهان. مسجد شیخ لطف الله هم در عکس دیده می شود می گویند که شاه عباس این مسجد زیبا را مخصوصا برای خانم های خاندان صفوی ساخته بود برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حجاب اسلامی در اینترنت جستجو کنید واژگان بسیار خوب بسیار خوب تو هم می توانی بیایی تلویزیون ما شبها تلویزیون تماشا می کنیم بغل عکس پسرم بغل عکس من است کنار کنار موب یک چراغ هست. کتابخانه کتابخانه این دانشگاه بسیار غنی است. میز لطفاً ها را روی میز بگذار. تلفن ببخشید، می توانم از تلفنتان استفاده کنم؟ تخت خواب. خیلی خسته بودم و روی تختخواب افتادم. کامپیوتر این روزها همه کامپیوتر دارند. میز تحریر من همیشه سر میز تحریرم درس میخوانم. پشت او پشت من ایستاده بود. جلو جلو میز یک صندلی راحتی هست. در تهیه. در طی این سه سالی که او را می شناسم حتی یک دروغ نشنیدم. به شکل یا به صورته روی لباسش یک طرح است به شکل نقشه ایران. اساس؟ شما خیلی اساس دارید. اسباب کشی می توانید در اسباب کشی کمکم کنی؟ تکلیف یا مشق ببخشید امروز تکلیفمان چیست؟ چیست؟ صدا می توانید با صدای بلند حرف بزنید؟ بلند صدای بوق ماشینم خیلی بلند است. کوتا موهای من کوتاه است. عجله او با عجله از کلاس بیرون رفت. چاقو یا کارت این نان را با چاقو ببر قاشق در ایران برای غذا خوردن بیشتر از قاشق و چنگال استفاده می کنیم چنگال برای خوردن سیبزمینی سرخ کرده از چنگال استفاده کن کلید فکر می کنم کلیدم را گم کردم قفل. قفل در خانه من خراب است جلسه جلسات امروز جلسه داریم پس دیر به دنبالت میآیم. پلاک پلاک شما چند است؟ اتوبوس اتوبوس پر بود. تاکسی دیر شده است. بهتر از تاکسی بگیریم. قطار مسافرت با قطار ارزان است. هواپیما هواپیما سریع وسیله نقلیه است. مترو آیا تهران مترو دارد؟ دوچرخه من با دوچرخه سر کار میروم. موتور. موتور خیلی خطرناک است. قوطی این قوطی را چطور باز کنم؟ در کن. این قوطی را با در باز کن باز کن. گاهی گاهی احساس خستگی می کنم اخیراً اخیراً متوجه شدم که او بسیار لاغر شده است. هم هم من هم غذای ایرانی دوست دارم هم غذای هندی. هنوز هنوز آن فیلم را ندیدم. با وجود این؟ خیلی خستهام با وجود این می خواهم درس بخوانم. چگونه؟ چگونه می توانی اخلاق بد او را تحمل کنی؟ شکل شکل قشنگ است. خاندار مادر من خاندار است. بچه داری بچه داری نیاز به حوصله زیادی دارد. خانداری خانداری معمولا به عهده خانم ها تفکر تفکر ما با هم خیلی متفاوت است ام ازدواج امر مهمی است. طبیعی بدخوابیدن قبل از امتحان امری طبیعی است مرد سالاری. در اکثر کشورها فرهنگ مرد رایج است مراقبت کردن می توانید از بچه های من نیم ساعت مراقبت کنید؟ جارو کردن من این اتاق را جارو کردم گردگیری کردن لطفا تو گردگیری کن و من جارو می کنم انجام دادن آیا می توانید یک کاری برای من انجام بدهید؟ پرستیدن من خداوند یگانه را می پرستم مقصر دانستن او مرا مقصر می دانست خسته کردن کارهای خانه مرا خسته می کند به دنیا آمدن در چه سالی به دنیا آمدی؟ باز کردن لطفا در را باز کن شستن من ظرفها را می شویم و تو آنها را خشک کن ماندن می شود یک روز دیگر اینجا بمانید؟ قرار داشتن آرامگاه فردوسی در شهر توس در نزدیکی مشهد قرار دارد گفتگو اسباب کشی تلویزیون را کجا بگذارم؟ بقل کتابخانه میز تلفن را کجا گذاشتی؟ پشت تخت خواب بلی بهتر است بگذاری کنار تختخواب. بسیار خوب کامپیوتر را کجا بگذارم؟ روی میز تحریر آریان زیر میز را جارو کردی؟ بله هم زیر میز، هم پشت میز و هم جلو آن را جارو کردم داخل و خارج میز را هم دستمال کشیدم آریان کجاست؟ بیرون با بچه همسایه دارد بازی می کند خاندن، تفکر سنتی در ایران خیلی از خانواده ها به شکل سنتی زندگی می کنند یعنی مرد سر کار می رود و زن در خانه می ماند و خانداری و بچه داری می کند اخیرا خیلی از زن و شوهرهای جوان کارهای خانه را بین خودشان تقسیم می کنند زیرا هم مرد و هم زن خارج از خانه کار می کنند با این وجود تفکر اکثر مردم هنوز سنتی است و مرد سالاری را امری طبیعی می دانند. در شهر چه خبره؟ در کلاس. سلام کامران. درس خوندی؟ نه خیلی. تو چی؟ من تاریخ اسرام رو یه نگاهی کردم برای ادبیات را اصلا. من لایه هیچ کدومش رو باز نکردم. میخوای یه خلاصه از تاریخ اسرام رو بهت بگم؟ آره دمت گرم درس 11 هم تخت جمشید کجاست؟ قسمتی از مجموعه سلطنتی باستانی تخت جمشید تخت جمشید حدودم 500 سال قبل از میلاد توسط پادشاهان هخامنشی ساخته شد برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تخت جمشید و دوره هخامنشی در اینترنت جستجو کنید واژگان شلوار چه شلوار قشنگی پوشیدی؟ شلوار جین ببخشید این شلوار جین چند است؟ ویترین لطفاً آن کفش پاشنه بلند سفیدی را که پشت ویترین است بیاورید اندازه این کفش اندازه من نیست خرید خانومها ها از خرید لذت میبرند. کدام کدام را می آیا این را بیاورم؟ روسری من از روسری تو پررنگتر است کمرنگ چشمان او قهوهی کمرنگ است وطن وطن من ایران است باهوش بچه ها خیلی باهوش هستند بشر اولین اختراع بشر چه بود؟ به این دلیل ایران بناهای تاریخی بسیاری دارد به این دلیل مورد توجه جهانگردان است هر ساله هر ساله هزاران نفر برای حج به مکه می روند سراسر دنیا متاسفانه این بیماری در سراسر دنیا شایع شده است بناهای تاریخی بناهای تاریخی بسیاری در شیراز و اطراف آن قرار دارند مقبره مقابر مقبره سعدی در شیراز قرار دارد آرامگاه آرامگاه بابا تاهر اوریان در همدان است شاعر شعرها حافظ یکی از بزرگترین شاعران ایران است دیدنی ها خیلی از شهرهای ایران دیدنی های جالبی دارند ویژه خصوصیت ویژه شما چیست؟ مثل. این فیلم مثل است که دیشب دیدم قار قار علی در نزدیکی همدان است بالاخره. بالاخره زمستان تمام شد و بهار فرا رسید دور آرزوی من این است که روزی دور دنیا سفر کنم ماشالله ماشاءالله چه خوشگل شدی؟ متأهل. آیا شما متعهل هستید؟ مجرد من مجرد هستم شما چطور؟ میمون آیا درست است که اجداد انسان اولیه میمون بودند؟ نشان دادن لطفاً کارت شناساییتان را نشان دهید آوردن لطفاً بچه هایتان را به این مهمانی نیاورید به کسی آمدن این رنگ خیلی به شما می آید تجرب کردن از رفتار او تعجب کردم ناراحت شدن امیدوارم از حرف ناراحت نشده باشی خرید کردن من روزهای جمعه خرید می کنم خریدن لطفاً سر راحت کمی شیرینی بخر فروختن بالاخره توانستم ماشینم را بفروشم. فرستادن. هفته پیش یک نامه برایت فرستادم. آیا به دستت رسید؟ دارا بودن. ایران دارای منابع طبیعی بسیاری است. پوشیدن. کلاهت را بپوش، هوا سرد است. فراموش کردن. ما خاطرات خوب را خیلی زود فراموش می‌کنیم. به یاد داشتن. هنوز آن روزها را به یاد دارم. ایستادن. لطفاً بیستید: چراغ قرمز است. نشستن. ببخشید، می توانم کنار شما بنشینم؟ ترک کردن. او مرا در شرایط بدی ترک کرد. یاد گرفتن. پسرم یاد گرفته است که به بزرگترها احترام بگذارد. یاد دادن. می شود لطفا به من دوچرخه سواری یاد بدهید؟ تقلید کردن. میمون خیلی خوب از آدم تقلید می کنند. قبول شدن من در کنکور قبول شدم رد شدم او در امتحان رانندگی رد شد گفتگو خرید لطفاً آن شروارجینی را که پشت ویترین است به من نشان بدهید کدام را؟ آبی پررنگ را می‌خواهید یا آبی کمرنگ را؟ لطفاً آبی پررنگ را بیاورید چه سایزی می‌پوشید؟ سایز چهل ماشالله به شما نمی آید سایزتان چهل باشد شما به نظر لاغرتر می خیلی ممنون خاندن مراکز جهانگردی ایران دارای یکی از کوهندترین تمدنها است و به این دلیل هر ساله ادده بسیاری از سراسر جهان به ایران می آیند تا بناهای تاریخی و مقابر شعرا و دیگر مراکز جهانگردی را از نزدیک ببینند هر یک از شهرهای ایران دیدنی های ای دارد مثل آرامگاه فردوسی که در شهر توس خراسان است ارگ بم که در استان کرمان است قاره علی سجر که نزدیک همدان است بیسوتون که نزدیک کرمانشاه است سی و سپول که در اصفهان است و تخت جمشید آرامگاه حافظ و مقبره سعدی که همه در استان فارس هستند در شهر چه خبره در پوست خانه سلام جناب میخواستم این بستر رو به کانادا بفرستم توش چیه؟ کتابه؟ بله سه تا کتابه واسه پسر دارم میفرستم میخواین با پست هوایی بفرستین یا زمینی؟ کدومش عرضون تره؟ معلوم خانم زمینی دیگه چند روزه میرسه؟ چند روز نه چند هفته یه سه هفته ای طول میکشه درس دوازده هم موسیقی پاپ بهتر است یا سنتی؟ چند عدد سیدی موسیقی سنتی ایرانی استاد محمد رزا شجریان و استاد شهرام نازری از معروفترین و محبوبترین خوانندگان سنتی کشور هستند برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محمد رزا شجریان و شهرام نازری در اینترنت جستجو کنید واجگان امتحان سراسری. او برای امتحان سراسری خیلی درس میخواند. کنسرت امشب به کنسرت شجریان میایی. موسیقی پاپ من از موسیقی پاپ خوشم نمیآید موسیقی سنتی من عاشق موسیقی سنتی هستم. خاننده خواننده مورد علاقت کیست؟ مورد علاقه رنگ مورد علاقه من آبی است. دفعه بعد. دفعه بعد که لطفا کتاب مرا هم بیاور. نتیجه نتایج نتیجه امتحانات چه شد؟ خنددار بگذار یک داستان خندهدار برای تعریف کنم. سیستم آموزشی سیستم آموزشی ایران شبیه سیستم آموزشی فرانسه است. منظم دانش آموزان به طور منظم در صف ایستادند پیش دخترم به پیش دبستانی می روید دبستان, دبستان در ایران شش سال است دبیرستان دانش آموزان دبیرستانی خود را برای کنکور آماده می کنند سن سنین هیچ وقت از خانومها ها سن سنشان را سوال نکن پایان در پایان نامه اسم خودت را بنویس و امضا کن دیپلم. تنها با داشتن دیپلم نمی توانی کار پیدا کنی کنکور کنکور بسیار سخت است. کل کل کلاس قایبند بر اساس این فیلم بر اساس رمان صادق هدایت ساخته شده است. رتبه رتبه شما در کنکور چه بود؟ رشته رشته من مطالعات اسلامی است. روزنامه او در دفتر یک روزنامه کار می کند گریه گرفتن از رفتار خشن او گریه هم گرفت. خنده گرفتن از جو که او خنده هم گرفت خوش آمدن آیا از خطاطی خوشت می آید؟ خواب بردن دیشب دیر آمدم و روی مبل خوابم برد یاد رفتن یادم رفت قرسم را بخورم یاد بودن یادم است همیشه می گفت صدای مرا دوست دارد بد آمدن من از غذای چرب بدم می آید گرم بودن پنجره را باز کن خیلی گرمم است سرد بودن می شود بخاری را روشن کنی خیلی سردم است تمام کردن کی در را تمام می کنی؟ انتخاب کردن نمیدانم کدام رشته را انتخاب کنم چاب شدن کتاب شما کی چاپ شد؟ طول کشیدن چقدر طول می کشد که از خانه به دانشگاه بروی؟ اعلان کردن خبر ترور نخست وزیر را در رسانه ها اعلان کردند پذیرفته شدند آنها در دانشگاه پذیرفته شدند گفتگو خواننده مورد علاقه میخواهی با من به کنسرت گروه آریان برویم؟ من از موسیقی پاپ خوشم نمی آید چرا نرویم کنسرت شجریان؟ من همیشه در کنسرت های موسیقی سنتی خوابم میبرد یادم میاد پارسال وقتی به کنسرت شهرام نازه‌ای رفتیم نه تنها بدت نیامد بلکه خیلی هم خوشت آمد بله یادم هست ولی گروه مورد علاقه من آریان است. خیلی خوب. ولی دفعه بعد باید با من به کنسرت شرریون بیایی. خواندن، آموزش و پرورش. سیستم آموزشی در مدارس ایران بسیار منظم است. بچه ها در سن 5 سالگی به پیش دبستانی می روند. آنها از شش سالگی تا دوازده سالگی به مدت 6 سال به دبستان می روند. پس از دبستان برای مدت شش سال به دبیرستان می روند. پس از تمام کردن دبیرستان در هجده سالگی در کنکور که یک امتحان سراسری در کل کشور است شرکت می کنند این امتحان بسیار سخت است بنابراین دانش آموزان باید بسیار درس بخوانند. سپس آنها بر اساس رتبهشان در کنکور می توانند انتخاب رشته کنند. پس از مدتی در اینترنت نتایج کنکور اعلان می شود. این روز بهترین روز برای آنهایی است که در دانشگاه پذیرفته شده و بدترین روز برای آنهایی است که نتوانستند پذیرفته شوند. در شهر چه خبره؟ در مطب دکتر خب مشکلتون چیه خانم. گلون درد میکنه و سرم چند روزه؟ چهار روزه ولی امروز حالم خیلی بدتره حالت تواهم دارم دراز بکشین اینجا تا فشرخونتون رو بگیرم فکر میکنه این جدیه آخه من بار دارم نه یه سرماخوردگی جوزیه این قرصه رو هر شیش ساعت با مایات فراون بخورین حالتون خوب میشه جای نگرانی نیست درس سیزره هم. دانشگاه شما چه نوع دانشگاهی است؟ مدرسه مادرشاه یا مدرسه چهارباغ اصفهان. امروزه ها در مدارس علمیه یا حوزه های علمیه تحصیل می کنند قبل از تأسیس دارالفنون، اولین دانشگاه ایران، در سال 1851 میلادی هیچ دانشگاهی در ایران وجود نداشت و محصلین برای ادامه تحصیل به حوزه های علمیه و یا اروپا می رفتند برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دارالفنون در اینترنت جستجو کنید واژگان. ضبط صوت. اگر ضبت صود داشتم می توانستم سخنرانی استاد را ضبط کنم لاستیک زاپاس آخ پنچر شدیم لاستیک زاپاس داری؟ گزارش طبق گزارش این خبرگزاری بیسوادی در ایران کاهش یافته است کتبی من امتحان کتبی را به شفاهی ترجیح می دهم. شفاهی من در امتحان شفاهی قبول می شدم. درصد چند درصد از دانش آموزان مدرسه شما در کنکور قبول شدند دوزد دوزد توانست فرار کند سرقت تا به حال هیچ سرقتی در خیابان ما صورت نگرفته است هر روزه هر روزه ادهی زیادی در این کشور جان خود را از دست می‌دهند صدها صدها نفر در آن درگیری کشته شدند دانشگاه دولتی دانشگاه دولتی شهریه ندارد مجانی یا رایگان امروز اتوبوس و مترو مجانی است پول ببخشید ولی پول کافی همراه هم نیست شهریه شهریه دانشگاه شما چقدر است ورود ورود به دانشگاه در ایران بسیار مشکل است سخت امتحان پایان ترم بسیار سخت بود نه به اندازه او تو را دوست دارد اما نه به اندازه من دانشگاه مکاتبهی شهریه دانشگاه مکاتبهی زیاد نیست از طریق از طریق علی با زینب آشنا شدی مکاتبه آیا با دوستان دبیرستانت هنوز مکاتبه داری؟ فرد، افراد افرادی که مشکل قلبی دارند نباید امروز بیرون بروند چون آلودگی هوا بسیار بالا است علاقمند. من به این رشته خیلی علاقمند بودم تحصیلات او تحصیلاتش را در دانشگاه مکگیل به پایان برد تحصیلات عالی آیا شما تحصیلات عالی دارید؟ ادامه دادن آیا قصد دارید به تحصیلاتتان ادامه دهید؟ سعی کردن سعی کن رفتارت را تغییر بدهی دزدیدن. دوچرخه مرا دزدیدند پیدا کردن آیا کیفت را پیدا کردی؟ گزارش کردن هر گونه مورد مشکوکی را گزارش کنید وجود داشتن می دانی چند میلیون سال پیش وجود داشتند؟ وارد شدن در باز شد و او وارد شد موفق شدن آنها موفق شدند در جنگ پیروز شوند سرقت کردند این بانک را سرقت کردند گفتگو. اداره پلیس بسیار خوب بگو ببینم چه شده چیزهای ماشینم سرقت شده چه چیزهایی سرقت شده ضبط صد و لاستیک زاپاس باید یک گزارش کتبی بنویسید و چیزهایی را که سرقت شده نام ببرید چشم جناب معمولا چند درصد احتمال دارد که دز پیدا بشود؟ چقدر سوال می کنید؟ فقط ماشین شماست که سرقت شده هر روز صدها سرقت مثل این به ما گزارش می شود خواندن: انواع دانشگاه در ایران چهار نوع دانشگاه وجود دارد دانشگاه دولتی که مجانی است و ورود به آن سخت است دانشگاه آزاد که شهریه است و ورود به آن مشکل است اما نه به اندازه دانشگاه دولتی دانشگاه مکاتبه ای که پولیست و از طریق اینترنت و مکاتبه است و دانشگاه شبانه که پولیست و برای افرادی است که در طول روز کار می کنند. هر سال عده زیادی از جوانان ایرانی در کنکور شرکت می کنند و کمتر از نیمی از آنها موفق به ورود به دانشگاه میشوند جوانان ایرانی به تحصیلات عالی بسیار علاقه‌مند هستند و سعی می کنن تحصیلات خود را در دانشگاه های داخل کشور و یا خارج از کشور ادامه دهند. در شهر چه خبره؟ در کتاب فروشی بفرمایین فرهنگ انگلیسی به فارسی دارین؟ بله داریم جیبی باشه یه جلدی باشه چند جلدی باشه؟ فرق نداره جدیدترینش نش رو میخوان. این یکی از همه جدید تره ولی این یکی کاملتره. دانشجو کدوم رو بیشتر می خورم؟ این یکی که کامل تره؟ پس منم همون رو می خورن. درس 14 هم هستید یا متأهل؟ یک زن و شوهر جوان ایرانی در حیات خانه قدیمی در شهر کاشان طبق تازه ترین آمار میانگین سن ازدواج برای زنان در ایران 23 سال است و برای مردان 26 سال برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آمار ازدواج در ایران در اینترنت جستجو کنید. واژگان گل روز مادر برای مادرم گل خریدم. هدیه هدیه تولدت را بعدا برایت می آورم. تولد تولد شما در چه ماهی است ؟ تولد مبارک تولد مبارک امیدوارم به همه آرزوهایت برسی. سلیقه من سلیقه تو را در تزیین خانه دوست دارم از طرف از طرف من به خانواده سلام برسان کافی من اطلاعات کافی در این مورد ندارم ده برابر قیمتها از سال گذشته تا حالا ده برابر شده هن. بابا جان بابا جان یکم بیشتر مواظب باش خسیس من از آدم های خسیس اصلا خوشم نمی آید. دست و دل باز اگر دست و دل باز باشی دوستان بیشتری خواهی داشت. ازدواج او آرزو دارد ازدواج کند. عروسی عروسی آنها بسیار مجلل بود. سبک سبک این نویسنده تنزگونه است. مراسم مراسم عقد در خانه خودمان برگزار شد. غربی کشورهای غربی از نظر صنعت بسیار پیشرفتهاند. اقوام اقوام مادرم همه در خورم شهر زندگی می کنند. آشنا او از آشنایان پدرم بود. امر خیر هر روز باید امر خیری انجام داد تا بهتر زندگی کرد. ابتدا ابتدا تخم مرغها را بزنید و سپس آرد و شیر را اضافه کنید. خواستگاری معمولا دخترها به خاستگاری پسرها نمی روند. به همراه؟ او به همراه پسرش به خانه ام آمد دست گل دست گل عروس بسیار زیباست نامزدی نامزدی آنها به طور ساده برگزار شد دوران دوران استبداد به سر رسید و زمان آزادی فرا رسید زوج آیا آنها زوج خوشبختی هستند؟ اتفاق یک اتفاق ساده می تواند سرنوشت فرد را تغییر دهد برگزار شدن امسال کنفرانس زبان و ادبیات فارسی در این شهر برگزار می شود نامزد شدن او نامزد ریاست جمهوری شد. موافق بودن آیا شما با عقاید من موافقید؟ گم کردن من کیف پولم را گم کردم. پیشنهاد کردن من به آنها پیشنهاد کردم که کمتر صحبت کنند و بیشتر عمل کنند. فرق کردن ایران از پنج سال گذشته خیلی فرق کرده است وقت گرفتن پیش از رفتن به پزشک باید وقت بگیرید اعتقاد داشتن آیا به معجزه اعتقاد دارید؟ عقد کردن می توانیم امسال عقد کنیم و سال آینده عروسی کنیم شهر دادن لطفا در مورد پیشینه کارتان به طور مختصر شرح دهید توضیح دادن ببخشید. می شود لطفاً این موضوع را کمی بیشتر توضیح دهید؟ به دست کردن. حلقه اش را به دستش کرد. گفتگو. هدیه تولد. امروز تولد خانومم است. نمی دانم چه هدیهی برای او بگیرم. گل بگیر. همه خانوم ها گل دوست من خوب نیست. تو این ده هزار تومان را بگیر و از طرف من برای او گل بخر. این پولی که تو کافی نیست باید ده برابرش کنی خیلی خوب پس ده هزار تومانی رو که به تو دادم بده بابا جان تو چقدر خسیسی آدم باید برای خانومش دست و دلباز باشد من خیلیم دست و دلبازم خوب این صده هزار تومان رو بگیر ولی مواظب باش گم نشود خواندن، ازدواج به سبک سنتی مراسم سنتی ازدواج در ایران با مراسم ازدواج در کشورهای غربی فرق می کند معمولا دختر و پسر به هم معرفی می شوند و آشنایان این کار را امری خیر میدانند. ابتدا خانواده پسر از خانواده دختر وقت می گیرند و به خاستگاری دختر می روند. در روز خاستگاری پسر به همراه خانوادهش با یک دسته گل به خانه دختر میروند. دختر برای آنها چای می آورد و با پسر و خانوادهش آشنا می شود. اگر هر دو خانواده موافق باشند دختر و پسر با هم نامزد می شوند. نامزدی رسوم ویژه خود را دارد جشن نامزدی جشن نسبتا کوچکی است که در خانه دختر برگزار می شود و دختر و پسر حلقه به دست همدیگر می کنند. خیلی ها اعتقاد دارند که دوران نامزدی بهترین دوران زندگی یک زوج است. پس از دوران نامزدی دو خانواده روزی را برای عقد تعیین می کنند. جشن عروسی بعد از عقد و معمولا در خانه پسر برگزار می شود و جشن بزرگی است. عروس و داماد این روز را همراه با خانواده، اقوام، دوستان و آشنایانشان جشن میگیرند. در شهر چه خبره؟ سفر ما فردا میریم ترکیه با قطار؟ نه با هواپیما قطار خیلی طول میکشه چه ساعتی پرواز میکنین؟ ساعت 9 صبح ولی باید هفته صبح فرودگاه باشیم ترمینال پروازهای خارجی میرین یا پروازهای داخلی؟ پروازهای خارجی باید عوارز فرودگاه رو هم بدیم میدونی هر نفر چند کیلو بار میتونه داشته باشه؟ نه ولی موقع تحویل بار میفهمم بله ولی اون موقع باید اضافه بارم بدی. درس 15 هم. چرا آنقدر تعارف میکنید؟ چند جلد رمان فارسی. رمان نویسی نسبت به شعر در ایران قدمت چندانی ندارد. نویسندگان ایرانی در دوره قاجار در قرن نوزدهم شروع به رمان نویسی کردند. در حال حاضر تعداد رمان نویسان ایرانی چه در خود ایران چه در قربت نسبت به سی سال پیش افزایش یافته است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رمان فارسی در اینترنت جستجو کنید. واژگان. بوق. رانندگان ایرانی عادت به بوغ زدن دارند. مسیر. ببخشید، مسیر شما کدام طرف است؟ تعمیرگاه. باید ماشینم را به تعمیرگاه ببرند. مخصوصاً همه شهرهای ایرانی زیبا هستند. مخصوصاً شهرهای شمالی نمایشگاه کتاب نمایشگاه کتاب در این محل برگزار می شود قفه از قفه صناع دستی ایران دیدن کنید بازدید کننده بازدید کنندگان شماره بازدید کنندگان به یک میلیون نفر رسید. محقق محققان محققان بسیاری درباره تاریخچه زبان فارسی نوشتهاند دیدار. کی به دیدار من میآیید کتب علمی آیا به کتب علمی علاقه داری؟ درسی قرار از کتب درسی عوض شوند موضوع موضوعات موضوع تز شما چیست؟ نشریه نشریات نشریات داخلی و خارجی در این قرفه یافت می شوند سنایه دستی سنایه دستی اسفهان معروف است نرخ نرخ پند چند است؟ ارز. از کجا می توانم ارز تهیه کنم؟ دولتی شرکت های دولتی از دولت یارانه دریافت می کنند. سرگرمی سرگرمی او خیاطی است قرص خواب خوابم نمی برد. احتیاج به قرص خواب دارم ترسناک از فیلم های ترسناک اصلا خوشم نمی آید بازنویسی یک ساعت طول کشید تا تکریفم را بازنویسی کنم نوشیدن آیا چیزی برای نوشیدن میل دارید؟ ترسیدن بچه ها از تاریکی می ترسند. رسیدن برای رسیدن به اهدافت باید خیلی تلاش کنید جوشیدن آب در صد درجه سانتیرات می جوشد رساندن می شود لطفاً مرا به خانه برسانید؟ مایل بودن آیا مایلید با هم قهوه بخوریم؟ پیاده رفتن من اخیرا پیاده سر کار می رذم. مطمئن بودن. آیا مطمئنی که باران نمیآید؟ تارف کردن. ایرانیان عادت دارند زیاد تعارف کنند. مزاحم شدن. ببخشید مزاحم شما شدم. باور کردن. باور کنید راست میگویم گویم. تبدیل کردن. کجا می توانم دلار را تبدیل کنم ؟ منتشر کردن. او کتابهای زیادی منتشر کرده است. به نمایش گذاشتن تعدادی از تابلوهایش را به نمایش گذاشت عرضه شدن نشریات داخلی و خارجی در این فروشگاه عرضه می شوند حواس بودن حواست هست داری چه کار می کنی؟ گفتگو بوک کجا می روی؟ من می رسانمت. نه، مایلم پیاده بروم، متشکرم تعارف نکن، تو در مسیرم هستی مطمئنی؟ مزاحمت نمی شدم. نه باور کن خیلی خوشحال می شدم ماشینت منو ترساند خیلی معذرت می‌خوام. باید ماشینم را به تعمیرگاه ببرم صدای بوغش خیلی بلند است دقیقا مخصوصا اگه حواست نباشد و یک نفر پشتت سه بار بوغ بزند. نمایشگاه کتاب هر ساله در اردی بهشت ماه نمایشگاه بزرگ کتاب در تهران برگزار می شود در این نمایشگاه کتاب مختلفی از سراسر دنیا به نمایش گذاشته می شوند. دانشجویان و محققان بسیاری برای دیدار و خرید کتب علمی و درسی به این نمایشگاه می روند کتاب های بر اساس موضوع در قرفه های این نمایشگاه عرضه می شوند. نمایشگاه کتاب از نمایشگاه های دیگر بازدید کنندگان بیشتری دارد. به جز کتاب می‌توان نشریات و صنایع دستی نیز در این نمایشگاه خرید. دانشجویان می‌توانند کتاب‌های کتاب های منتشر شده در کشورهای غربی را با نرخ ارز پایینتر خریداری کنند. کتاب خواندن یکی از محبوب ترین های ایرانیان است. در شهر چه خبره؟ تارا؟ سلام شهرلا خانم، رزام به آقا رزا، قربون شما، همین الان داشتم به شما و بابا فکر میکردم محبت دارین شما، آقای دکتر خوبن با زحمتهای ما چطورید؟ چقدر دیشب بهتون زحمت دادیم؟ اختیار دارین رزا جون، این حرفا چیه؟ چه زحمتی؟ لط کردین تشریف آوردین؟ ما که از زیارت شما آقای مهندس تیر نمیشیم شما محبت دارین مهندس میخواست با آقای دکتر صحبت کنه تشریف دارن؟ بله گوشی قربون شما خداحافظ